دین اساسا دنبال این هستش که یه سری کارهایی رو حتما ما بهش متخلق بشیم عادت کنیم بهش لذا به بیان باید و نباید وارد شده واجب و حرام ببینید خیلی دقیق این دین ما جاگذاری شده همدیگر رو پوشش میده این نی می ما ما کار من الاخلاق در گفتار پیانبر داریم که ازاد فرمودن که من اصلا مبعوض شدم به پیانبری برای این که اون اخلاق الهی رو تمام کنم چه از جهت دانشی یاد بدم چه از جهت رفتاری به شما نشون بدم تا شما دنبال کنید و این رو به عنوان عادت با تکرار این اعمال بهش برسید دین اومده دستگاه این سازمان دینی اینجور هستش که با احکامش و با فقهش به بیان باید و نباید دنبال اخلاق و افعال و رفتار لازم هست پس فلسفه باید و نبایدهای دین معلوم میشه که چیه فلسفه باید و نبایدهای دین این هستش که ماها رو متقلقه به اون بایدها کنه و خلقن ما رو منزجر کنه از اون نوایتها دستور میده که باید این عمل رو انجام بدید مثلا امانتدار باشید به وعد وفا کنید اینا بایت های دیگه دیگه کنار اون عبادت های فردی مثل نماز، مثل روزه و همثال اینا که از واجبات عبادی هست واجبات اخلاقی هم داریم دیگه مثل اینکه مثلا دروغ نباید بگیم منحیه باید ترک کنیم دروغ رو. صداقت رو باید مثلا باید انجام بدیم و باید این صفت رو کسب کنیم این بایتها و نبایتها مجموعش تشکیل میده افعال مرزی این در رو اون افعالی که خدای متعال بهش رضایت داره و علاوه بر رضایت دستور هم داده و دوری از افعالی که مرزی الهی نیست اینها ما رو بایتها و نبایتها رو به عادت خودمون در بیاریم این میگن عبادت اگر با به عادت باشه خوب نیست اشتباهه اصلا دین اومده ما رو عادت بده به نماز خوندن عادت بده به اول وقت مثلا نماز خوندن عادت بده به اینکه دروغ دروب نبوییم کم صبر نباشیم تا در مقابل گناه مثلا بیفتیم و مرتکب اعمال ناشایست بشیم در هر شک میخوام ارز کنم که خلق مجموعه عادتها هست اخلاق جمع خلق هست به معنای مجموعه عادتهای پسندیده که دین اومده از راه باید و نبایدها این عادتها رو خواسته در ما ایجاد کنه همینجا ما میتونیم استفاده کنیم که ارتباط فقر و اخلاق و ارتباط لیو معلولی هست یعنی فقه علت ایجاد اکتری اخلاق پسندیده است اون باید هاش اخلاق پسندیده است نباید هاش دوری از اخلاق ناپسنده یعنی ارتباط تنگاتنگ تنگ معلولی داره خیلی بحث نداره که فقه آیا ارتباط با اخلاق دارد یا نه اگر اخلاق را از منظر نظری و علمی ببینیم هیچ ارتباطی ندارد ولی اگر از نظر کاربردی نگاه کنیم اخلاق رو فکر ارتباط داره ارتباط خیلی تنگ و تنگ و هست.